رابرت فراست در اثر خود مرگ کارگر روزموزد میگوید او هرگز کاری را نادرست انجام نداده است اما نمیداند چرا به خوبی دیگران نیست خاک یک تفکر خود را بنا کن عمیق یاد بگیر وقتی استاد نمره ها را داد سیلاس مثل تمام دانشجویان دیگر به هیجان عصبی گرفتار شده بود او با دیدن عدد 58 درصد قرمز رنگ بالای برگه آزمون خود عصبانی و سرخورده و ناامید شد. جوابها را بلد بودم، فقط چند اشتباه کوچک احمقانه مرتکب شدم. واقعا بلد بودم، واقعا و واقعا معتقد بود جوابها ها را میداند. واقعا. متاسفانه این اتفاقات ناخوشایند پس از عقص مدرک به پایان نمی رسد. بسیاری از مردم با اعتماد به نفس و به غلط حرفه خود را با این باور سپری می‌کنند که آنها بیشتر میدانند و استحقاقشان از امتیازها و درآمد سالیانهشان بیشتر و موفقیت ظاهراً باستا به این موضوع است فهم گزاره آری یا خیر و کلید روشن یا خاموش نیست سیلاس ساعتها از وقت خود را صرف مطالعه کرده بود اما زمان خود را به جای بنا فهم عمیق به حفظ کردن مطالب اختصاص داد اگر این زمان را صرف تسلط بر مبانی شناسایی مزامین اساسی، پیوند دادن هر ایده به ساختار اصلی و دست آخر اندیشیدن به اینکه چه چیزی مطالب درسی او را احاطه می کند و گسترش می دهد می کرد، نمرات بهتری می گرفت. اما راهبرد سیلاس شبیه دانش آموز دبستانی ای بود که با دقت فراوان روش جمع اعداد رقمی را حفظ می کند. اما از سازوکار آن آگاهی ندارد و در نتیجه جمع اعداد سررقمی برای او به اندازه دیدار از سیارهای دیگر بیگانه است. فهم سیلاس در بهترین حالت، ظریف و شکننده بود. حتی تغییرات کوچک نیز او را گیج می کرد. زیرا به نظرش وظیفه او تشخیص دقیق چند واقعیت جداگانه بود، نه فهم معنا و ارتباط بین مفاهیم. هنگام یادگیری هر چیزی، به دنبال فهم عمیق آن باشید و آن را محکم و استوار کنید. اگر نواختن قطعه پیانو را فرا گیرید، به جای حفظ کردن حرکات انگشتان، هر نوت را بشنوید و ساختار قطعه را بفهمید. از خود بپرسید آیا می توانم نوت های دست راست را بنوازم و همزمان نوت های دست چپ را زمزمه کنم؟ اگر تاریخ جنگ داخلی ایالات متحده را میخوانید به جای حفظ کردن چند نکته مهم، مثل لینکلن رئیس جمهور بود، لی فرمانده بود، بردهداری در آن نقش داشت، برای فهم پیش‌زمینه ها، نیروهای رقیب و ارزش‌های اجتماعی درگیر که آن دوران خونین را رقم زد، تلاش کنید. هنگام تصمیم گیری های سیاسی، به جای توجه به ظاهر و برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها هدفمندانه درباره مسائل مهم کسب اطلاع کنید و باورهای اقلانی خود را گسترش دهید. می توانید هر موضوعی را بهتر از آنچه تاکنون می میفهمیدید بفهمید. اگر در تعریف فهم خود به معیارهای بالاتر قائل باشید، می توانید در نحوه درک و دریافت خود از دنیا انقلاب برپا کنید. گام‌های زیر نشان می‌دهد چرا فهم عمیق در بنانهادن محکم و استوار تفکر و یادگیری آتی اهمیت بسیار دارد. مطالب ساده را عمیق بفهمید. بنیادی بنیادیترین مفاهیم هر مطلب را می‌توان با امگه هرچه بیشتر فهمید. بازیکنان حرفه‌ای تنیس توپ را تماشا می‌کنند. ریاضیدانان مفهوم متنوع عدد را می‌فهمند. دانش آموزان موفق تسلط خود بر مفاهیم فصلهای قبل را همزمان با مطالعه مطالب پیشرفته ارتقا می دهند افراد موفق به طور منظم بر هدف اصلی حرفه یا زندگی خود تمرکز می کنند خبرگان واقعی مدام به عمق تسلط خود بر مبانی می افزایند فهم ترمپت نوازی با یک درس ارزشمند تونی پلاگ استاد بین المللی و مورد تحسین نوازندگان ترومپت آهنگساز و معلم است. چند سال پیش فرصتی دست داد تا نحوه اداره کلاس استادی تک نوازان ماهر او را شاهد باشیم. در کلاس هر نوازنده قطعی ماهرانه به انتخاب خودش می نبخت. کارشان فوق‌العاده بود. تونی معدبانه گوش می‌داد و همواره نظر خود را چنین آغاز می کرد. بسیار خوب، بسیار خوب، قطعی است، اینطور نیست چنانکه انتظار میرفت به هنرجویان درباره روش بهتر نوازندگی توصیهه میکرد و درباره تکنیک بدنی و موزیکالیته پیشنهاد میداد. تعجربه هم نداشت. اما ناگهان تغییر رویه داد. او از هنرجویان خواست برای دستگرمی قطعه بسیار سادهی به نوازند که به هر ترومپت نواز نوآموز داده می شود. آنها چند نوت نواختند که در مقایسه با نطهای ریز و بسیار تند قطعات پیچیده قبلی کودکانه به نظر می آمد پس از اجرای قطعه ساده تونی برای اولین بار در کلاس ترومپت را برداشت او همان قطعه را نواخت اما قطعه مورد نظر هنگام اجرای او دیگر کودکانه نبود اجرای او استادانه بود هر نط صدای غنی و دلکش داشت او به آن قطعه شکل مطبوعی بخشید و با نمایش حس سرشار از پویایی آن به ما امکان داد معنای نهفته در آن نوتهای ساده را بشنویم. اجرای هنرجویان حتی نزدیک به آن هم نبود. تفاوتها حیرت انگیز بود. تفاوت بین استاد واقعی و هنرجویان با استعداد به وضوح در مراتب نمایان نمایانتر بود تا در زرافت قطعات پیچیده. تونی توضیح داد تسلط بر اجرای کارامد و متنوع از قطعات ساده به شخص اجازه می دهد قطعات بی پیچیده را با تسلط و مهارت بیشتر بنوازد. درس ای بود. استاد توصیه کرد هنرجویان پیشرفته وقت خود را بیشتر صرف تمرین قطعات ساده کنند و اجرای آنها را با کارایی فنی و زیبایی برازنده بیاموزند. کار عمیق روی مفاهیم ساده و پایه به خلق استادی واقعی نه فقط در موسیقی بلکه در هر کار دیگر کمک می کند فهم میق چیست چطور می توانید بفهمید که مطلب را امیق نفهمیدید؟ زمانی که هنرجویان پیشرفته ترامپت قطعه ساده را اجرا میکردند نوتها را مینواختند و کارشان به نظر خودشان خوب بود آنها پیش از شنیدن تفاوت اجرای خود با اجرای استادانه واقعی تشخیص نداده بودند که می شود آن قطعه را بهتر نواخت در هر کاری که میکنید مهارت و دانش خود را درباره مفاهیم بنیادی و مطالب ساده بهبود دهید یک بار کافی نیست هنگام بررسی مجدد مبانی به بینشی نو دست مییابید شاید رجوع به مبانی گامی به عقب و مستلزم زمان و تلاش اضافی باشد، اما با ایستادن بر بنیادهای محکم و استوار خیلی زود شاهد اوجگیری سری قابلیتهای خود خواهید بود. روش برانگیختن تفکر مؤثر، تسلط بر مبانی تصور کنید میخواهید مهارتی کسب کنید یا مطلبی را بهتر بفهمید. در پنج دقیقه معلفه های اصلی آن مهارت یا مطلب را که جنبه پایهی دارد بنویسید. فهرست شما جریان آزاد خداگاهی خواهد بود. اکنون یکی از موارد فهرست را انتخاب و سی دقیقه صرف بهبود مهارت خود در آن مورد کنید. کار امیق روی مبانی این امکان را به شما می دهد تا مهارتتان را بپرورانید و دانش خود را در مراتب بالاتر که به دنبال آن هستید امیق کنید. از این تمرین در مورد موضوعات دیگر که به گمان خود میدانید یا میخواهید بدانید استفاده کنید. مثال: واکنش دانش آموز در تلاش برای فهم اقتصاد پایه. گام اول: فهرست اجزا بر اساس طوفان فکری. مانند بیشینه کردن سود، بازار آزاد، عرضه و تقاضا، توازن عرضه و تقاضا. توجه کنید که فهرست دانش آموز نه سازمان یافته و نه کامل است و این خیلی خوب است. گام دوم بهبود فهم مثلا توازن عرضه و تقاضا. ابتدا باید معانی منحنی عرضه و تقاضا را بفهمم. محور افقی مقدار و محور عمودی قیمت است. برابر این متوجه می شوم که چرا منحنی تقاضا به طرف پایین راست است. و منحنی عرضه به طرف بالا راست پیش می رود. جمان کنم توازن نقطه تلاقی این دو است. اما اگر تراز در طرف چپ نقطه تلاقی باشد آنگاه قیمت تقاضا از عرضه بیشتر است توجه کنید که دانش آموز با موفقیت به عدم فهم ایده پایه یعنی معنای منهنی عرضه و تقاضا پی برد است او اکنون می داند که ابتدا به چه موضوعی فکر کند فهم محکم و استوار ایده پایه به او امکان می‌دهد در آینده بیشتر و سریعتر پیشرفت کند. رویکرد عقل سلیم به عمق مطلب راه می‌برد. بسیاری از ایده‌های پیچیده، ظریف و ژرف از مشاهده بیاندازه واضح تجربیات ساده روزمره ناشی می‌شود. حسابان یکی از تاثیرگذارترین مفاهیم کل تاریخ است. این رشته به شکل اساسی تجربه ورزی زندگی روزمره ما را دگرگون کرده است. گستره وسیع نوآوری‌های فنی از کاوش فضایی تا تلویزیون پلاسما، کامپیوتر و تلفن همراه بدون حسابان ممکن نبود و حسابان بر تفکر عمیق درباره حرکت ساده روزمره مانند افتادن سیب از درخت استوار است. در سال 1665 میلادی طاعون خیارکی در انگلستان شیوع یافت. دانشگاه کمبریج تعطیل شد تا از شیوع این بیماری هولناک جلوگیری شود و ایزاک نیوتن و دانشجویان دیگر را به خانه فرستادند. نیوتن دو سال آتی را در مزرعی خالاش گذراند و در آن دوران مفاهیم بنیادی حسابان و قوانین فیزیک را صورتبندی کرد. شاید این داستان مشهور درست باشد که نیوتن زیر درخت سیب نشسته بود و سیبی روی سرش افتاد و از اینجا به ایده گرانش عمومی و حسابان دست یافت. اندیشیدن به سرعت سیب افتان می‌تواند ایده مشتق را به ذهن متبادر کند. بست عمیق این مفهوم پایه که سرعت برابر است با مسافت تقسیم بر زمان. اندیشیدن به این مطلب که با آگاهی از سرعت سیب در هر لحظه مقدار سقوط سیب معلوم است، به ایده انتگرال منتهی می شود. نکته انتظایی بر این اساس که مسافت حاصل ضرب سرعت در زمان است. با شکوه ترین ایده های کیهانی از قبیل نحوه حرکت سیارات، از تفکر امیق درباره برخورد سیب با سر نیوتون به دست می آید. نیوتون، عالم حرکت خورشید، سیارات و ستارگان دوردست را با استفاده از قوانینی توصیف کرد که پیشامدهای پیشپا افتاده مانند سقوط سیب از درخت را توصیف می کنند. اسرار پیچیده و ناشناخته در امر ساده و آشنا نهفته است. یادگیری عمیق‌تر مبانی بر فهم بهتر هر مطلب، پس از یادگیری اصول آن تأثیر می گذارد. امروزه اگر از دبیران ریاضی سوال شود چه عاملی آموزش حسابان را تا این حد دشوار می کند، اغلب پاسخ می دهند، دانش آموزان ریاضیات پایه مربوط به سالهای گذشته را به خوبی نیاموختند. یکی از اسرار تسلط بر حسابان، تسلط واقعی بر پایه است. در هر کلاس، هنگام آمادگی برای آزمون بعد، مطمئن شوید که می توانید در تمام آزمونهای قبلی نمره کامل بگیرید اگر نمیتوانید برای امتحان بعدی آماده نیستید معلمان نیز باید این واقعیت بنیادی را بپذیرند و به دانش آموزان برای درک قاطع مبانی مقدم بر مطالب درسی کنونی یاری برسانند. برای یادگیری کامل هر مطلب و خلق ایده های فراتر از ایده های سابق بارها و بارها به مبانی رجوع کنید پس از یادگیری یک مطلب پیچیده با نگاه به گذشته مبانی بسیار ساده تر به نظر می آیند اما آن مبانی ساده اهدافی متحرکند با یادگیری بیشتر مبانی نیز ساده و ظریفتر، امیغتر، متنوعتر و معنادارتر می شوند استاد ترامپت نواز در یک تمرین ساده زیبایی بیکرانی دیده و به این ترتیب بینش های در قطعات دشوار و جذاب پیدا کرده بود. روش برانگیختن تفکر مؤثر سوال کن، چه میدانی؟ آیا واقعا مبانی را میدانید یا خیر؟ موضوعی را در نظر بگیرید که به گمان خود آن را میدانید یا تلاش میکنید بر آن مسلط شوید. یک سند خالی در رایانه باز کنید بدون مراجعه به منابع دیگر نکات اصلی درباره مبانی موضوع را یادداشت کنید آیا می توانید از مبانی موضوع توصیف منسجم دقیق و مفصل ارائه بدهید یا دانش شما نقصهایی دارد آیا هنگام تفکر درباره مثال های پایه دچار مشکل می شوید آیا می توانید کل موقعیت را که در آن قطعات کنار هم قرار می گیرند ببینید حال نتیجه تلاش خود را با منابع دیگر مثلا کتاب، اینترنت، کارشناسان و رئیس خود مقایسه کنید. پس از کشف ضعف‌های خود در فهم مبانی اقدام کنید. مبانی را به طور روشمند یاد بگیرید. با پر کردن هر خلق، مطالب مربوط به آن را نیز به خوبی بفهمید. بینش های نورا به بخشی از دانش پایه خود تبدیل و آنها را به مخش های مفهوم قبلی متصل کنید. این تمرین را هنگام یادگیری جنبه های پیشرفته موضوع به طور منظم تکرار کنید و روند تلاش های سابق خود را ثبت کنید تا با این وسیله بتوانید با نگاه به گذشته گستره پیش خود را مشاهده کنید. هر بار با به مبانی فهم شما از کل موضوع امیغتر می شود. مثال رعی دادن تا چه اندازه نامزدهای جویای مقام و منصب را میشناسید؟ پیشینه و دیدگاه آنها را چطور؟ موارد با اهمیت را برای خود یادداشت کنید. از دید خود دیدگاه هر نامزد درباره هر موضوع را فهرست کنید. بسیاری از رای دهندگان به ویژه درباره نامزدهایی که مورد نظرشان نیستند، آگاهی غیر دقیق و ناچیز دارند. سپس به دنبال پیشینه واقعی بروید و تفاوتها را ملاحظه کنید. با گوسترش دانش خود در روز انتخابات و پیش از آن تصمیم‌های آگاهانه‌تری می‌گیرید. عمیق یاد بگیرید. هنگام مواجهه با چالش دشوار آن را انجام ندهید. در سخنرانی در کنگره آمریکا به تاریخ 25 می 1961 جان فکنر رئیس شموور این جملات را ایراد کرد. به باور من مردم باید پیش از پایان دهه حاضر این دستاورد را هدف خود قرار دهند که انسان روی ماه فرود آید و به سلامت به زمین بازگردد در 26 می شورای ملی فضا لباس مخصوص به تن فضانوردان نکرد در عوض هدف اولیه آنها عملاً تصادم با ماه بود و تنها سه سال بعد ناسا با موفقیت رنجر هفت را با سرعت برخورد پنج و مایل در ساعت یعنی حدود 9500 کیلومتر در ساعت به ماه کوبید پس از ارسال بیش از چهار هزار عکس از سطح ماه توسط فضاپیمای بیسرنشین پس از پانزده مورد تکرار که همواره روبه بهبود بود سرانجام در شانزدهم ژوی جویه 1969 فضاپیمای آپولو 11 روی ماه فرود آمد و سرنشینان بر سطح ماه قدم نهادند. دانشمندان بزرگ، متفکران خلاق و کسانی که مسئله حل می کنند مسائل سخت را رو, رو و مستقیم حل نمی کنند. آنها هنگام مواجهه با سؤال رعباور، بیدرنگ و محتاطانه به شکست اعتراف میکنند. آنها میدانند که اطلاف بیفایده انرژی برای پرداختن به مسئله دشوار بی است. زیرا به جای آن میتوانند به طور مفید با نمونه ساده تر دست و پنجه نرم کنند و به این ترتیب نحوه برخورد با مسئله دشوار را بیاموزند. جورج پولیا میگوید اگر قادر به حل مسئله ای نیستید، پس مسئله ساده تری وجود دارد که قادر به حل آن نیستید. آن را بیابید. هنگامی که شرایط دشوار می شود، مشکل خلاق مسئله صدهترری میآفرینند که می توانند آن را حل کنند. آنها مسئله ساده تری را به طور کامل حل می کنند و سپس با دقت فراوان به مطالعه طرح ساده میپردازند. بینش حاصل معمولا راهی به سوی حل مسئله دشوار اصلی می گوشاید. از این ذهنیت در کار خود استفاده کنید که هنگام مواجهه با مسئله یا چالش دشوار، کار دیگری بکنید. کاملا روی حل مسئله فرعی متمرکز شوید که می توانید آن را با موفقیت حل کنید. کاملا مطمئن باشید که کار فوق العاده که با مسئله فرعی انجام می دهید بعدا مانند راهنما در جهدیابی از لابلای پیچیدگی های مسئله بزرگتر به شما کمک می کند. اما هنگام کار روی مسئله فرعی به سراغ مسئله پیچیدهتر نروید، ابتدا فقط به ماه برخورد کنید. پیاد روی روی آن را به روز بعد مکل کنید. روش برنگیختن تفکر مؤثر، اهمیت مسائل کوچک مسئله پیچیده را در مطالعات یا زندگی خود در نظر بگیرید. به جای پرداختن به کلیت آن جزء کوچکی از آن را انتخاب و به طور کامل حل کنید. مسئله فرعی و حل آن را خوب بفهمید. ارتباطها و پیامدهایش را نیز یاد بگیرید این جزء کوچک را از دیدگاه های مختلف و مفصل بررسی کنید مسئله فرعی بسیار کوچکی را که در این حد قابل بررسی باشد انتخاب کنید تنها پس از این مرحله میفهمید که تلاش شما چگونه به حل مسئله بزرگتر کمک کند مثال واکنش یک آموز هنگام استفاده از این روش برای مدیریت زمان مشکل بزرگ من مدیریت زمان است پس صرفاً میکوشم بر انجام دادن تکالیفم تمرکز کنم. این کار نیز بسیار دشوار است پس اجازه بدهید فقط بر آغاز انجام دادن تکالیف تمرکز کنم. می توانم ده دقیقه پس از پایان کلاس را به مرور های کلاسی و اندیشیدن به تکالیف اختصاص بدهم. سپس پنج دقیقه پیش از آغاز کلاس بعد های کلاس قبل را مرور کنم. که بسیار خوب است اما همواره عملی نیست برای عملی کردن ایده ام، شب در خانه دست کم ده دقیقه به مرور یادداشت های کلاسی امروز و آغاز تکالیف اختصاص می دهم. در واقع مشکل من نه تنبلی بلکه تمرکز است آها در این ده دقیقه رایانه و تلفن همراه را خاموش می کنم و این زمان کوتاه بیوقفه را با این آگاهی می‌گذرانم که هیچ مزاحمتی وجود ندارد. کیفیت این ده دقیقه بدون پیامک و ایمیل از سی دقیقه باوقفه بیشتر است. در این وضعیت آرامش اسرارامی زیما مرا در حالت مراقبه ذهنی و تمرکز فرومی برد و توجه به تکلیف در روز محول شدن آن که هنوز در ذهنم تازگی دارد از صرف زمان برابر برای انجام دادن آن یک روز پیش از تحویل بهتر است. زیرا آن موقع مجبورم زمانی را صرف یادآوری موضوع درس کنم. اگر این تمرین کوچک ده دقیقه را به یک عادت روزانه تبدیل کنم دوباره به سراغ چالش بزرگتر مدیریت زمان می روم توجه کنید که تمرین چگونه کار خودش را می کند، این تمرین هنگام مواجهه با چالش چالشآور مدیریت زمان چند اصل مهم را یادآور می شود. مانند ارزش زمان مختل نشده و متمرکز و ارزش بازه های زمان کوچک و منظم با تاثیرگذاری بیشتر. دوریختن مطالب آشفته، پیگیری مطالب اساسی در بخش امدهی از تاریخ، تصور مردم هنگام اندیشیدن به پرواز این بود که پرواز تنها مختص پرندگان است. و هنگام تجسم پرندگان در حال پرواز تکان دادن بالها را میبینیم. اما اگر کسی با هواپیما سفر کرده باشد میداند که تکان دادن بالها جزء اساسی پرواز نیست انهنای ملایم قسمت فوقانی بال اهمیت دارد هوا با حرکت سریعتر در قسمت خمیده فوقانی نیروی بالابر ایجاد می کند. منحنی جزء اساسی تمین نیروی بالابر مورد نیاز پرندگان و هواپیماست پوشی از تکان دادن بالها بسیار دشوار است زیرا آشکارترین، پرصداترین و بارسترین جنبه پرواز پرندگان است پیشگامان هوانوردی باید برای چشپوشی از تکان دادن آشکار بالها و یافتن انهنای ظریف آن یعنی همان ویژگی اساسی که به ما امکان صعود میدهد تمرکز فراوان میکردند. کشف مطالب اساسی هنگام مواجهه با مسئله دشوار و چندوجهی بکوشید اجزای اصلی را جدا کنید جزء اصلی همه ی موضوع نیست برای فهم نحوه انطباق جنبه‌های دیگر وضعیت با هم باید گام دیگری برداریم اما تشخیص و جداسازی اصول اساسی می تواند شما را از گرداب نجات دهد راهبرد پاکسازی مطالب آشفته و پیگیری مطالب اساسی دو مرحله دارد مرحله اول تشخیص و چشپوشی از تمام جنبه های مزاهم برای جدا کردن مطلب اساسی. مرحله دوم تحلیل مطلب اصلی و استفاده از بینش حاصل در کلیت وسیع تر. جستجوی ناامیدانه والدو در مجموعی از کتاب های کودکان به نام والدو کجاست؟ اثر مارتین هندفورد در هر صفحه یک تصویر بزرگ وجود دارد که با صدها چهره کارتونی کوچک و متصل به هم پر شده است. یکی از شخصیت والدو است که پیراهن راه راه سفید و قرمز متمایز و عینک گرد دارد. اگر به سبب وجود صدها چهره دیگر در صفحه نبود، یافتن والدو آسان بود. بچه ها از پیدا کردن والدو در بحبهه آشفتگی لذت می اگر چهره های دیگر را برداریم، پیدا کردن جای والدو بدیهی و خسته کننده می شود. چالش موجود به دلیل آشفتگی و به همریختگی است. اگر عملا به همریختگی را از میزتان به یافتن موارد باقیمانده آسان می شود. زدودن به همریختگی نه تنها چیزهایی را که می دانید آنجا هست نشان می دهد، بلکه ماهیت ناپیدای شکل دیگری از موقعیت را آشکار می کند. بسیاری از سوالات واقعی در احاطه تاریخ، زمینه ها و آرایه ها مبهم جلوه داده شدند. شاید باید مزامین اساسی را از لابلای ابر تیر و تار تأثیرات تعاملی و مرتبط جدا کنید. غالبا از این موضوع تعجب بیکنید که پس از تقسیم مسئله پیچیده به اجزای آن اجزای ضروری روشنتر و ساده تر است. چشپوشی از تمام موارد دشوار است. آشفتگی معمولا چشمک میزند و دنگ دنگ صدا می کند و دیوانهوار میکود توجه شما را از مطالب اساسی منحرف کند. شما با چشپوشی روشمند از آشفتگی ها یکی پس از دیگری می به مزامین اساسی توجه کنید که غالبا در آغاز دیده نمیشوند. پس از زدودن آشفتگی ها آنچه می ماند، فهم را روشنی میبخشد و مسیر خلق ایده های نورا هموار میکند. به یاد داشته باشید که چه بسا نتوانید همه چیز را ببینید، اما به یقین میتوانید از موارد بسیاری چشم پوشی کنید. پابلو پیکاسو میگوید، هنر انتظایی وجود ندارد، باید همواره از چیزی آغاز کنید، پس از آن میتوانید رد واقعیت را پاک کنید.